اگر هرچی من میگم باید پخش کنی چاپ پخشتن. کنی چون ما اصلا دست گرفتن مجوز نداریم برای نشریاتمون چاپ میکنید در صورتی اگه چیزی هم باشه ولی ما مسئول جواب میده ما یعنی قبل از چاپ نشریه اصولا مجوزی گرفته نمیشه برای چاپ بررسی نمیشه چون اول پخش میشه بعد اونو میگن که عارفه اونجا ایراد داشت در این صورت من فکر میکنم شما دوست داریم که اینجا سانسور سو روخه دی با ما ممنونیم که که در ما پذیرفتید تو تجون بهشت دانشوی اخیرا به خصوص خیلی دیدن حساب به چپ مثبتتر شده با توجه به حالا فعلی دولت و که این روندش که به بازار آزاد خیلی گراییده و این تغییری که به وجود حالا دانشونا خیلی تمام جو چپ کرده که از من گفتم که شاید شما فرد مناسبی باشید برای اینکه ما این مصادیب داشته باشیم امروز رو باید سیرشه امروز 24 آبان خب دیگه خود اعتباری دیگه در حرکت کامان ناگهانی دولت اومد سه برابر کرد قیمت بنزین رو شما سالا پیش مصائبهای داشتید در این حوزه که افزایش قیمت منابع انرژی بسیار کنه افزایش قیمت انرژی بسیار به زباره طبقات پایین و فرودست فراهم بود افزایش قیمت الان یک زمینه شو برای اعتراضات سراسری دولت هم الان خب دلایل مختلفی داره میاره برای این افسوشی خدمت از جمله اینکه جلوگیری از راند جلوگیری از قاچاق سوخت تا مثلا قای شال دیگه هوا که حالا من سوال اینه که دولت واقعا میتونه این گفته و تعقوق ببخشه یا مثلا یا عدل دیگه پشت این افسش قیمت فکر می‌کنی باشه نه این دولت به دلیل مشکلات اقتصادی که دامن خودش رو گرفته به این جهت قیمت بنزینه برده بالا عوار... باز بذار صحبتمون تام کن عوارض سیگار رو هم به همین دلیل برد بالا. قیمت کالاهایی در اختیار خودش رو هم در آینده به همین دلیل خواهد برد، براش قطعا میبره. قیمت گاز و آب و برق و مطمئنم. گیر افتاده 850 هزار میلیارد خزینه مربوط به بودجه 98 150 تا 300 هزار تو کسری داره. الان 560 هزار توشو داره اینجوری تامین میکنه. اونی هم که داره میگه میخوام از این دست بگیرم از اون دست بدم به مردم یالان میگه همچی کاری نمیکنه و نکردم این دفعه همه نارضایتیها ها از این نادرستگویی باز دوباره بروز کرده این دولت قیمتو بالا برده برای که بودجهش رو تأمین کنه اما از اونجایی که این دولت دولت با پشتوانه مردمی نیست و از اونجایی که این دولت منافع طبقاتی بسیار سنگینی در فعالیت‌های اقتصادی به نفع الایه بالا و بنگاه ها و نهات ها و ها داره نمیتونه بعضی از, از اینها رو کنترل بکنه بعضی از اینا متفاوت در عرصه های در عرصه های ایدئولوژی کش ها و سازمان ها و تشکل هایی که ازش فول می‌گیرن. هزینه که بابت فعالیت های نظامی داره، هزینه که بابت فعالیت‌های کنترل اجتماعی داره، یا سهمی که یک ذریعی لایه ها یا برخی از موسسات مثل آستان قدس مثل بنیاد مسترزفان، مثل کمیته فرمان ما اینها، پولای فراوانی در اختیارشون اون جا نمیتونه بره نمیره نمیخواد هم بره دولت های پی در پی هم همین بودن در مجموع وابسته به همین قدرت اقتصادی هم. درنا چه میاد بر سر مردم خراب میکنه مردم هم خب از گذشته ها لابد پدرانش براتون گفتنش میگم مردم ایران مردم نجیبین ولی مردم نجیب وقتی بالا سرپا این میشه و این پایان کار نیست این آغاز کاره به نظر من تازه کار شروع شد. تازه اندیشه نسبت به آن چک جامعه آبستن او هست تازه شروع شد یعنی 96 دی 96 هم ضربه اولیه بود و فاصله دی 96 تا ایناذر بیسه چهار ماه در واقع یکی اینا حساب میشه به نظر من 96 تا امروز یکی حساب میشه یه جریانه این جریانی که به پا که زیر ستم اقتصادی قرار گرفتن این دیگر مشت آهنین است این طبقه کارگر است آلجنوب جمله معروف یادتونه این اتفاق افتاده حالا برای اینکه مردم میدونن الترناتیوهای دیگری وجود داره که خراب بکنن سرشون میدونن همه ارتو که من میزنم بقیه هم میدونن منتها این چیزایی رو جایگوزین میکنن بعضی‌ها به تبلیغ به دروغ از منشأ آمریکا از منشأ دخالتوی امپریالیسم آمریکا که اونها رو باید توضیح داده بشه ولی الان وقت توضیحش نیست. مثلا میگن پول ما رو میرن خرج فلسطین میکنن هرگز آنچه که در فلسطین خرج شده یک پونسدوم دوزی که در داخل میشه نیست. اونه امریکا داره میدازه اسرائیل داره میدازه و هم همچون موجودات مردمی هستن فرصت داده میشه که اون فکر چای میشه بعدش اونم نمیاد یا پول ما رو میدن اونجا میدن ازبل ها کنه خیلی پولایی که گرفتور بهخررج مردم کرده مردم جنوب لبنان بسیار فه ولی مردم ما میتونن بگن به ما چه مربوطه؟ میتونن هم بگن کمک کنید کسی نپرسیده از مردم به هر حال چی هزینه هایی در چه کارهایی باید خرج بشه. مردم که به بازی نیستن. این آوار که سرشون خراب شد این باکننش نشون دادم. بنابراین این باکنش بنابر پیشبینی که ما میکردیم. همون بود که باید اتفاق می افتاد و افتاد. من یه بار دو بار ده بار نگفتم. بارها گفتم کتابانه ها نبشتم کتاب های اخیرم هم در ایران اجازه چاپ پیدانه کرد. رفت دو چاپ شده. همین حرف رو گفتیم که آقابت این فشار های یک سره بر سر مردمی که پیش این است که چون شماری میرن به مراسم عربعین پس میشه هرچی که لازمه در مورد زندگی روزمره این مردم تصمیم گرفت در خوشبینانه ترین قضايا و موارد باید بگیم که خب این اشتباهی مواصباتیه ولی اشتباه محاسباتی نیست این سمت و سوی طبقاتیه که این حاکمیت داره نتیجهش این اتفاق بوده که افتاده و بسیار اتفاق هم تکاندهنده دهنده و هم غم شما توی مصاحبت گفته بودید که گرانفروشی فروشی انرژی انرز... انرز... سبب کاهش امیت شغلی و معاشتی این کار میشه در حالی که یه سری از اقتصاددانان نولیبرال میگن که قیمت پایین انرژی دوره اشتغال رو می نیسن. شما بر اون گفتاتون چی بوده؟ همدان دور کارتش نزدیکه. اون اتفاقی که افتاده مربوط به گذشته است. اقتصاددانان نولیبرال بیان جواب بدن دیگه مگه اه... کم اتفاق افتاده خصوصی سازی؟ مگه کم اتفاق افتاده بالا بردن قیمتا؟ خب بعد نشون بدن نتیجهش چی شده در اشتغال. بحثی که من دارم میکنم اصلا فوزلیش به اقتصادان چه راست چه چپ نیومده حقوق مردمه. حقوق مردمه در قانون اساسی دیده شده این مردم باید برخوردار باشن از مدرسه، از درمان، از اشتغال، از مسکن. قانون اساسی گفته مملکتم داره و بنگلادش نیست اینجا. و دزدی و فسادم وجود داره در این کشور. بنابراین خیلی راحته شما حقوق مردم باید بشه بدید. برای من اون یکی بلند شده میادم رئیس شورای رقابت بوده. اون یکی کارشناس اتاق بازرگانیه. اون یکی یواشکی با وزارت اطلاعات کار کرده. اونا شدن نظریه پردازهای این اقتصاد و اون رسانه میلی. معلومه که وقتی ما رو را راه نمیدن اون تو؟ معلومه که اون حرفا رو یک طرفه دارن میزنن؟ نه چنین نیست این حق مردمه در درجه اول چیزی که به حق انسانی مربوط میشه فضولی دخالتش به اقتصادان نیمده ببیشه برای اقتصادانی که برای ثروتمندان داره کار میکنه قلبش در سینه برای پول میتپه اونها که به خصوص حق ندارن اگر مردم پیدا شدن انتخابات آزاد داشتن توی این دستگاه‌های رسانه‌ای بودن اقتصاددان خودشون هم فرستادن حداقل برای تعیین حداقل دستمزد اون موقع میگیم خیلی خوب حالا با هم عف بزنیم ولی یک طرفه چل سال مملکت رو به ناکشوندن به نابودی و فنا دادن حالا نشستن باز از این ارفاروشو میشه بزنن نمیدونم. حالا این افسارشناخ بنزیفی میگه چه تصدیر تو سطح معیشتی درکای مختلف میزده؟ به نظر من من پیش بینیم این بود که 45 تا 50 اصد تبرم سال 98 خواهد بود من گمان میکنم این رقم حالا بیشتر میشه و سال بعد جامعه و اقتصاد آبستن تنگناها و فشارهای بیشتری هست این به دلیل دیوارهای حراستی و حفاظتی که داران، لامبورگینی سوارا دارن این طبعاً این فشارها منتقل میشه به رو به پایین اصلا ساخت طبقاتی یعنی همین یعنی اسابت نمیکنه به اون جایی که شما هدف میگیرید منعکس میشه یه اصلی داریم بر اقتصاد به نام اسابت و انعکاس اون منعکس میشه کمانه میکنه ترکشش میاد بیخوره به لایه های پایینی و لایه های پایینی هم به قول فروغ فرخزاد گفت درخت نهال گردو انقدر قد کشیده که از دیوار اونور خونه همسایه رو تماشا بکنه. این که دولت میده کار بود، نمیده. نه تنها کارا نخواهد بود، راست نمیگه نمیده. من یه بار دو بار سه بار چهار بار زندان نیفتادم از اون رژیم تالا ولی این یکی اشتهار پیدا کرد این که در مورد یارانه ها گفتم اشتحارش مثل اشتحار پیشمینی دانشگاه هاروارد نیست که به عدم اصابت اشتهار داره مثل در باقی پیش بینی خود فری برز ریستانه و خود های چپ و رادیکال هست در ایران چون ریشه ها رو پیش پیشمینه من این بود که شما اون چهل پنجایزار تومن رو به تدریج از بقیه کم میکنید بعد هم زیر آفتاب تموز تبرم تبخیر میشه این رقم میره و دود میشه به مش خواستم میره توی آسمونها اینطور شده و حالا هم باز پیشبینی من این است که اون رقمها رو نخواهند پرداخت به خاطر اینکه اصل نظام پابرجایی دولت و حبس امنیت مملکت اونطور که اون گروه حاکم داره میگه و تعریف میکنه اون برای اون اولویت داره و خیلی زبردسته دولت در سرکوب خونین همینطور که خیلی ز در مذاکرات پشت پرده، ببین مثلا یه مربی تیم ملی رو چه بلایی سر فوتبال دوسته آورده گیزشون کرده، در مذاکرات پشت پردن با هم واجه ای که حاضر نیست جمهوری اسلامی از استفاده کنه دیدی تو این چهل سال جمهوری از امپریالیزم از پراله از سوسیالیزم از سندیکا اسم بیاره نه اینا براش تابو هن. این جریان علاقه داره که بر اون پشت پرده سازش کنه حرف بزنه بعد صدایی کمونچش فردا در بیاد بیرون از این طرفم هم آماده است برای سرکوب اخقه رئیس جمهور انتخاب مورد حمایت اصلاح طلبان رو ندیدید پری روز چجوری میخندید؟ این در واقع تسخر زدن به توهیدستان به فرودستان و نادارها بود این پاسخ میبینه دوباره الان شما ساله پیش فرموده بودید که اقتصاد ایران نیولیبرالی هستش بلی خب با ترجمه که آدم ما خیلی میبینیم که دولت تو مثلا نرخ از کنترل داره رو حیث قیمت غیرواقعی ر عدم از بنزین نه اقتصاد دولتی <تصال> بابا همین نولیبرالی میتونه دولتی هم باشه مگه نولیبرالیسم هربرو توافق واشنگتن اجرا نمیکنه مگه بانک مرکزی با امریکا دوباره نولیبرالیسم است مگه اونا دخالت نمیکنن. میکنن ای بابا این چه دانش غلطیه که این تلویزیون این دستگاه های راستگرای افراطی که تو این کشور حکومت میکنن به مردم دادن نولیبرالیسم اتفاقا دولت رو میخواد برای اینکه آشکار یا پشت پرده دخالت کنه این یکی به نفع خودشون میکنه این یک دوبه که دولت نیست یکی از سرمایدارای جریان کشوره سرمایداری بروکراتیکه سرمایداری کلاریگاله سرمایداری روحانی سرمایهداری میلیتاریستیه اینا هستن حاکم با هم دست و دست و هم, هم تا حالا دیدی یکی از این اتاق بازرگانی از با گوششو بگیرن اگر کسی دزدی کرده بی اجازه دست تو سفره برده میزنن انگشتشو میشکنن شکی شک نیست ولی سفره پهنه اه... نولیبرالیست اصلا با لیبرالیست برق داره لیبرالیسم که اوائل قرن 20 مرد یه اقتصادونی ما میکنه پس تچهر چیه اگر تو میگی مورده ما تچهر فاشیست بود اینا نوالی الان دولت رو به شکلی میخواد شما خیال میکنی اون 4-5 تا که رئیس گوگل و فرمانده فیسبوک و اینا میارن اینا مبتکرانی هستن که یواش یواش توی پارکینگ خونه شون روش کردن اومدن بالا نه وزارت دفاع و دولت و سرمایه سنگینی های که در زیر ساختای ارتباطی شده زمین سارس شده برای رشد اونها محتسب مست شد و م... فسخ خود از یاد ببرد محتصب مست شد و فسخ خود از یاد ببرد صحبت ماست که بر هر سر بازار بمان خودشون همه کار دارن میکنن هم غرب هم اینجا بعد موقعی که رو در رو قرار میگیرن برای که میخوان فشار رو خیلی بیشتر بر بردوشه کارگران بپیشونن میگن که نه هنوز که هنوزه نه هنوز چم فشردیم میگه 300 تا 300 تا مردن به ها. خیلی بیشتر از اینا جا داره این استدلال ها رو اون نولیبرالها میکنند میکنن دروغ میگن به مردم نمیذارن حقیقت روشنشه. شه یه بخشش سرمایه هاش رو در پشتیبانی دولت ها قرار میده این یکی حرف آخر اینه که ببین خصوصی سازی ها یک روند داره ادامه پیدا میکنه یک روند اینها رو دادن به بخش خصوصی پس واقعه هفت چی بود واقعه فولاد احواز از کجا اومده اینا رو به ثمن بخش دادن به بخش خصوصی رفته کسی اینو صحبتشو نمیکنه. اونی که در دست دولت مونده بخش خصوصی باد می‌خواد نفته چه جای نفته یادگار دکتر مصدق یادگار خیام مردم ایرانه اون متعلق به مردم ملت ملی میگه نه اونم بده به من همه رو میخواد. تا قیامت هم, هم این کارو خواهد کرد. باید قطعیت بشه به معنی اقتصادی، خلعیت بشن اون های قدرت حاکم. یعنی به چه شکلی مثلا در بوزن نفت. اراده مردم، مالکیت مردم. ببینید، موقعی که نفت ملی شد نگفتن نفت دولتی میشه، گفت نفت ملی میشه. یه دولتی کردن داریم، یه ملی کردن، یه اجتماعی کردن. اجتماعی کردن برنامه‌ی سوسیالیستاست. ملی کردن برنامه دموکراتیک و مردمی و ملیه دولتی کردن یعنی دولتی نفت ایران ملی شد جنبش دهه 1129 تا 1132 که با یاری امپریالیستا با کمک مستقیم آیت الله کارچانی اتفاق افتاد تو این کشور در واقع علیه اراده ملی قیام به پا کشیدن اون ملی بود ملی یعنی دولت فقط نماینده مردم و حق دخل و تصرف به اون صورت نداره. اون میشه دارایی عمومی مثل تمین اجتماعی مثل شهرداری. اینا مالکیت های عمومی غیر دولتی هست. تمین سازمان تامین یا توسط بیمه شدگان توسط کارگران نداره بشه. الان رئیسش و رئیس دوستش و نمیدونم... اون یارو رئیس همه رو خود دولت تید میکنه توی بودجه امسالم ام همین دولت دست به نه بیستو هفتم درآمد تعمین اجتماعی محل درآمدهایی که برای درمانه گفت همه این بعد زیر دست من باشه اند برداره خج کنه حالا گورو بابای بیماره من خودم یه بیماری دارم ما دوسه میلیون تمن هزینه داروی من بوده شانس آوردم خانوم دکتورم نمیدونم جیب منو زیر دستگاه ماری متوجه شد یا چی؟ که الان دوسه ماه میگه دیگه احتیاج به این دارو نداری یا دستی هم نستشون احتیاج نداری خب فرزندان این آابخواه کارگران زحمتکش و شرابافت بند اینابقا های بتر بیمارستان می میمیدن در حالی که سازمون تامین شده دولت چی کاره بوده؟ اینا نیستشون با ملی شرکت ملی نفت ایران هم دولت فقط نماینده از طریق مجلس پاس خوب باشه. بعد ادار ملی کردن نشنالایزیشن با سوشالایزیشن با دولتی کردن فرق دارن زنده یاد مصدق یه سوسیالیست نبود یه سوسیال دموکرات بود و به گرایش های چپ هم داشت و اونو ملی اعلام کرد الان اینا اتاق بازرگانی و خنده داره واقعا یه دبستان رو نمیشه دستشون داد چون میستندرین چون میخوام برم بفروشن بچه رو رو اون زمین اونا میگه حالا این نفت ها ملی کن ب... ب... ب... ب... چیزش کن ردش کن بیاد برا من این سازوکار جلیدی که بس مثلا قیمت بنزین باشه و از شما چی اصلا کردن افزاش قیمت بنزین؟ ممکنه که یک تدبیر خوبی گاهی باشه که از حزینه تمام شده استفاده کنیم گروه هم فهم اولین موقعی که اومد سر کار همین حرفا رو زد گفت بعضی از این سرمایه ها که ما بعضی از این باه هتا میدیم ریخت و پاش میشه بهره ور ازش استفاده نمیکنن بعد بشکنن خب چه جوری میشه بهره بری اون واه رو تعیین کرد نگوف با میارهای مارکسیستی نگوف با میارهای منافع اجتماعی در نگرش کل جامعه گفت خب اینا که بهره رو بعد دوباره بیاریم بسد دیگه ما همونجا فهمیدیم که اون دروغ داره میگه کش سوسیالیسم میخواد به گل بنشونه و نشوند برخلاف اونی که میگفت الانم دارن موقعی که الانم دارن موقعی که توبت میکنن این سازوکارهای کار می الانم الان هم موقعی که می خوان از سازوکار منطقی صحبت کنن میگن گن قیمت تمام شده حرفی نداریم حرفی نداریم باشه ولی ما نماینده بقیه هم هستن دیگه ما هم هستیم برد بفرق. کار میکنه. این یا رزم اینو بقیه هستن، وقتی میخوان از طریق قیمت تمام شده تعیین کنن باید ببینیم اگر قیمت بنزین از قیمت تمام شده راه بالاتر چی کنیم؟ قیمت تمام شده یعنی چی؟ موقعی که بشکهی به چل دلار میرسه نفت خام در بازار جهانی، اون موقع میگه به چیزی مردم پس بدید؟ چجوری به قیمت تمام شده رساب این یک؟ دومی که دست مستارم بر اون اصاس حساب میکنی؟ مهم اینه. در ای که شما میشینید و پا میشید. یه میلیون و هزار تومان حتی حداقل دست درصد می‌کنین این جامعه 6 میلیون بیکار داره و از اونم کمتر می‌گیرن فارغ تحصیل پزشکیش میاد تلفن چی میشه خب تو این جامعه که تو نمیتونی بگی من اونه رو به قیمت تمام شده حساب کنم انسانم به قیمت تمام شده حساب کن اونم بچه داره نون میخواد اونم تدری میخواد حضرت رضا میخواد بره خوبه این هم بذارید اون بره شما میری این وزیر مسکن کی بود دو سر اومد بچه همون موقع ما میگفتیم آقا اینا غیر قابل اعتماد هم گوشته میکنم وزیر مسکن چی میگو من برم هواپیمایی خارجی قیمت فلان بخرم داداش این هواپیما وقتی به هدنسی میپوشن با اون نرخ برش اینو قیمتشو قیمت دراری از توی این مردم بعد باید بلیتو تو به برابر قیمت برابر همون 20 میلیون 24.5 میلیونی که زاران و کارگران و مردم طبقه متوسط تو اینا که برای تمدید تواناییشون که بتونن دوباره کار کنن و استثمار یهبار سالیه‌وار یه میرانم امام رضا اونارا هم نمیتونی ببری باید بدی به دست قربانگاه جاده میگفت در جواب ما هر میکشیم از این چپا میکشیم میگه برو هواپیمای نونخاست هواپیم های یکی یکی چپا می... اون وقت خریدی نجات دادی مردم تو که خودتون نجات دادی ببلیز رفتی تو باستیرز میشینی اینا رو باید ببیسی بیسی این بلا بر سر این جامعه آمده وزیر مسکرش در حالی که نگاه کن خودتو خود همکراسی ها میخوان صاحبه خونه بشن ازدواج کنن ازدواج شرعیه قانونی پاکیزه خب خونه نداره مردم دخترش ایگه نمیده تو چادر زنده ای که برای یه تحصیل کرده و خودش رفته توی باستیرز توی اون چیزه. توی اون منطقه یه چیه؟ آ واسه تحصیل توی لواسان 400 میلیارد تومن قیمت خونهشه. وزیری مسکن بوده. اون وقت سه جون خانی خالی تو این کشور ما رو ثروتمند کرد. اینا خلاف اصول اقتصاد. اگر بخم فقط اصول اقتصادم نگاه کنیم اینایی که ما اصول اقتصاد نیست، اینا هستاساته. اون وقت اونی که میگه قیمتو ببریم بالا برون این که این دوتا سپر اصف رو از تو گوشه چشمش برداره فقط به هزینه ی تمام شده ی منزینی کام کنه و اون اصطاد دانه؟ اون برجشت هست؟ ما نه؟ خب خودتون ما رو از دانشگاه بیرون چردی دیگه بیا صفا الان میگی دوزش ما اصطاد دانشگاهیم تو نیست الان بس راه جایگزین برای دولت چی شد؟ برای بالا بردن دست موسا. بله انتقال این حزینه ها به بنیادها و نهادهایی که دارن صرفتو نمیتونی دولت؟ من میتونم برو که نوز ما بشینی پشت فرمون یه مدت من از این گذرگاه عبور میدم جامعه رو من تنها نیستم پابلو لون گفت ما بسیاری من تنهایی که زور نمیزنم برای اقتصاد من کاری که میکنم دموکراتیزه میکنی اقتصاددانان بیا نظرهاشونه بدن ترجمه این سیستم بسطی فعلی و این تن. سیستم بسطی من خدمتگزار سیستم بسطی هستم من مامورم یادم شکستن این سیستم نخدمت رسانی بهش اونو برو از پژوهیان و قانونجواد از اینا بپرسین <تصفح> الان خب با جامعه ایران سال‌ها زیده فشار کمال شکن اقتصادی بوده الانم دیگه خب هم با تبرگیرا همه میگن دیگه نه تنها با بحران‌ها بلکه با ابر بحران‌ها در دست و گریمون و خب الان سرکوب پاسادهای مدنی و سیاسی هم ولی سوال اینجاست چرا جمهوری ایران علی رغم تمام این فشارا و کمتر از حد اندزد دست به اعتراضات فراریی مثل برای که می‌کشتن نمیدونم چند بار توالا تو زندگی رودر رو شدی با باجواد برای که خیلی بخیمه همین حرکت هایی که مردم ایران کردن قهرمانان است اصلا کم نیست سخته تو همسایت دونم 4 ماه 3 ماه تظاهرات تو عراق به این اندازه کشته نشودن در یه روز دو. اما بابست, این, بابست این در این سرزمینی که هر وجب از خاکش به سری خورشیده، خیال نکن. این خورشیدا ها میشن برای همشه. شگوارا چی گفت؟ گفت ما را دخت کردید خیال کردید میپوسیم اون ما برز رو بودیم. بیرون میاییم. شاخ و برگ میدیم. اینا احساسات و اینا یا شرداردن نیست اگرم باشه چه خوب چه خوبه که من آدم یه ساساتیم پیش هنوز احساس انسانی دارم ولی احساسات نیست اینا یه حقیقتیه که چهل سال این حکومت چه هر ساله اینو کمتر بادسی چه بررسی لامونو کمتر اون, اون روزی از شاری از چه یکی گاه 1364 یازده هزار و 66 دو چه یازده هزار و 66 دو ملت رو یه جور خاصی تعریف کردن وطن دوستی رو یه جور خاصی تحریب کردن آزادی رو یه جور خاصی سرش کوبیدن بعد این داستان ادامه داشته نه اه اه اه این حرکت ها و این خواست ها به تدریج داره جان میگیه چون یکی از دشوارترین ترین کوهنبردی هاست و به تدریج یه جریانی که ضد مردم حرکت میکنه به تدریج روشا دست میده و در برخورد نهاییش خورده نابود میشه خب الان برخورد نهاییش شاید پیش نمیادش شاید هم خیلی خوب بکشه الان متوجه میشید خب الان استعاده خیلی ضعیف شده در ایران این دیگه به شکلی یک بدیل نگاهمیشه بهش و اینکه که خب دیگه اون هورمونگروی سالون به خصوص مثلا توش دانش وجود نداره راه بالوردن این بازده این فعالیت های نظامی سیاسی چیه ببینید استاد که اولا مرده دنیا آمده بود همون موقع ما فهمیدیم که رهبرشون ببیزه در دوره دوم متوقف کرد. همه چی ترمون، سد و مسیره. اون هیچی. من در نشریه یه دانشوی شما نمیخوام از آرمان خودم دفاع کنم. نمیخوام بگم راه چیه. جاه چیه. در یه گوزگاری که وحشت هست در دنیا میباره من وظیفه اینه که اتفاقا نشان بدم. راه کدام از راه کدام است. وظیفه من آقایی رسانیه. بهطبقه کارگر بدان به بر روم فکرهایی که میخوان احساس مسئولیتدار میخوان در صحنه باشند. اما به دلیل محدودیت که نشتی شما داره تو این 4ارچوب نمیخوام بگم راه کدامه. این نکرم نمیخوام به فراموشی بسپور که مقدار زیادی از مشکلات اقتصاد ما مستقیما مال امپریریزم میکست. هم به خاطر تحریم هم به خاطر بازیگری که با اینا مییت یار اگر این بود فیدل کاسترو بس این حاکمیت واقعا صف نظر از برخی روابط دیپلماتیک نه شست سال اونو در محاصره لیگ عربی که اوباما اومد رفت سفارت و سفارتو کرد باز این دیوونهه اومد اونو رو هم زد اما این حاکمیت اصلا به رسمیت نمیشناسه پدیده امپریالیزمو برای که بخواد بشناسه و چپ رو مارکسیست‌ها رو هم رو هم برعکس اون هنوز داره به دهش 60 افتخار میکنه چهره های دایش میذاره در قدرت بنابراین از جهان چون یکی هفت سر اجده هاست کسی نیست که کس از چنگ و باورش راه هاست من فکرم توسی در قرن چارو میلو برای حالای ایران گفته بود اما ما میدونیم راه چیه گفتیم در جاهای دیگه هم گفتم متشکل کردن نیرومند کردن اراده پایینی ها اون پایینی ها بیان بالا تصمیم بگیرن. اون هست اون حرکت. کسانی که حقوقشون ضایع شده. اون 70-80% جامعه که این برچه ها رو ساختن. زندگی رو ساختن در این جامعه. معلمانی که در اون بر علیگو در روستا ترزندان معصوم این آب و خاک و درس داده. بعد خودش و شاگرداش و خونه شون رو همه رو سیل برده. اونها راه نجاته. هیچ راه نجاتی در اصلاح طلبی و در رقیباش نیست نه این هم همبسته کردن بشه شکل این حالا این شکلی نهاده مدنی که شما شاید بیشتر این کار اینه که از هر کس که این سوال رو بکنی اون میتونه از خودت این سوال بکنه که خودت چند قدم برداشتی خب مثلا اگر همه قدم ها رو بردارن راه همبستگی خودشون شروع میده اگر ما مجبوریم یه مسیری رو همینطور بریم و بریم و بریم، به تدریج متوجه میشیم که اونای که چلوتر رفتن تجربه هاشون چیه؟ دسته هم رو بگیریم از تایی نجاد بدیم در گزرگاه های کوستانی چگون عبور بکنیم؟ مگه من دفع اول که رفتم کو؟ تو اون برف رفتم، تو اون بالا رفتم تا توچار برای که اسکندر صادقی نجاد ما رو هدایت میکد اون موقع مگه قبلا پور رفته بودم نه؟ تجربه ها به من آمد یاد دادن. از اراده جبونیم هم استعادی کردم. اشتباه هم زیاد کردم. بشر تفاوتش با حیوانات یکیش در اینه که انسان با خودش انباشته ها رو داره. انباشته سرمایه در نظام سرمایه داری. اما انباشته تجربه ها، انباشته نیروی طبقه استثمار شده. تویلستان مردمی که حقوقشون زایه شده. اونا تجربه ها رو پیدا میکنن راهش این نیست که بیرون با پشت کاغذامون بچینیم پشت لپتاپمون بگیم چجوری میشه اینا رو متحد کرد بعد بری توش در عمل پیدا میشه راه می گی نه از جوانایی که دسته دسته الان توی زندان ها هستن بپرس چرا میرن احساساتی شدن نادانن برو سواد متوسط درک متوسط احساس متوسط اونارو اندازه بگیر بس بالاتر از لامبورگینی سواراس این بس ها تا بیایید متوسط موندن که میخوانم رو بگیرن و برن و سه رو بگیرن و زن بگیرن یا بذارن برن اگه چیزی دارن امریکا و اینا با, با اونا دیگه هستن دیگه کاریشون نمیشن نیروی ولی نیروی اجتماعی نمایندی نمایندگی خودشو در روشن فکرها داره نشان میده اینا کیه پس؟ اونا که سر جریان هفت تپ دستیل شدن کیه هم از آسمان اومدن؟ امريكا فرستاده بودشون نا تمام نیروهای صدام آمریکایی هم. تمام موزه دارن امپریالیزم آمریکا ولی ای بی رحما اصلا به اون توجه نکردن میگه ببین تو داری راز فقر رو به فقیران نشون میدی این تویی که داری میگی اون فقر رازش در غناست و ما نماینده اون اغنیایی من با تو طرفم تو دشمن اصلی من تویی اون یکی با حل حل کنم اون یکی ها رو ولی تو یکی رو نمیتونم حل کنم چون تضاد آنتاگونیستی با داره تضاد طبقاتی است یک طبقه میرود یک طبقه میآید تو حضورت به معنی این هستش که دوره ای من تموم شده واه شده یکی از انتقاداتی که خیلی فکری به خصوصا اون داره و این گرایشی که به اصلاحات وجود داره همچنان علی الرغم اینکه این, این جریم بسیار ضعیفه به شما مرده است اینا کمیونیساد در واقع این حالت رو داره که یک دستی در قدرت داره و خب روندش به گونه‌ای که خوشونتامیز نیست یا هر چیز دیگه و اینکه میتونه جامعه رو طول ایده یه ایده بسته کنه در حالی که مثلا می‌بینیم که کارگر 7 از از فکری جدا هم اون و مثلا نویسنده از اینها جدا این رشته ارتباطی وجود نداره ببین اتفاقا همون دستی که در قدرت داره بغتچه آ شما میرید دستی رو میبوسید چه باعث این یافته نیچه بود، گفت دستیری که نمیتونی گرفت بکنی برو ببوس. اون تسلیم شده گیر ذاتی است، برای که انتقاد نیته نیشه به این جهان از انتقاد از بیرون اینجا هانه. خیار است برای انتقاد که مارش میکنه به درمون خود نظامی. این دست وارد قدرت اتفاق داره شکلی ایجاد میکنه. برای که خیار میکنی داره به امنیت میده، امنیت میده، مگه خودشون رو در سال عشته اپنی نبود بعدم امنیت به یه دی خاصی ممکنه بده بعد خیلی وابسته بهش باشی. در اون چهارچوب. بعدم اساسا نادیده گرفته شدن. یادشون میره نوستین که نادیده گرفته شدم توسط همین ساخت قدرت. بعدم آسان بوس قدرت شدن. نه یه نکته, نکته دوم چی میگه؟ کارگره یه پس په از روشن جدا بودن پس این روشن فکرها که گرفتن از جمله مثلا نشریه دانشجوی گام یکی سال زندان دادن به سپیده غلیان به عسل محمدی به مرضیه اینا یا به ندا که هنوزدن. اینا این روشن نبودن روشن فقط باید حتما اخته تو سری خورده باشه بره بشیری پایین منقل تا روشنپک بشه اون روشنپک بودن دیگه این دو سه با میکره که نگه این احل هم؟ مردم اهل مردم, هن. مردم هن. مداران they are people اون اهل مدارا با هم دارن زندگی میکنن ده ها سال ست ها سال تو این محله اودلاچان مسلمون و یهودی و سنی و کرد و غیره اونم با هم زندگی میکردن چی اومد اینا رو به هم زد امام جمعه وقت تهران در زمان ناصر دیشا نه مردم اگر آزاد بشن احلا خشونت ایستن این خشونت و قدرته که به اینا تحمیل میکنه باید یه بار از خودت بپرسی واقعی آبان 98 واقعا این مردم بودن عکسهایی که در درمیاد از کشته شدگان کن اینا احل تبرزدن و شکستن و غارت کردن نه این نیست اتفاقا چون دستی در قدرتی میدی که خشونت رو تحمیر می‌کنه دیگه قابل اعتنا نیستی. ما البته اینطور نیستیم ما نادیده بگیریم نادیده نمی‌گیریم. خیلی وقت مثلا مکتب فرانکفورت در انتقاد به سرمایه‌داری خیلی حرفا من منم دیده می‌گیرم، نادیده نمی‌گیرم. <تصفيق> یا پیر تو فرانسه خیلی یافته‌هایی داره، پیکتی یافته‌هایی داره، کتابش رو ناصر زرفشان ترجمه می‌کنه که مارکسیست سابقه برای که حرفای اون تو هست این ما نیستیم که پرهیز میکنیم از محرفا یاد میگیریم اونها هستن که یک بار از خودشون نپرسیدن چه اتفاقی افتاد تو دعیش هست تو اون گورستان ها کیا چرا اینا خشونت کردن اینو خشونت تعمیل کردن جانشون رو میدادن برای امنیت این کشور برای امنیت هموطنانشون من یکیش جلوتو نشستم من جامعه و نامن میخوام مگه امنیت این جامعه اینجا ما رو میخواب اون کسی که دست میکنه توی صندوق تامین اجتماعی پولار بربی داره اون نیات تو اون کسی که دزدی میکنه آدم افراتیه اون که علیه مردم شمشیر میکشه افراتیه نه ما ما افراتی نیستیم ما رادیکال باشیم یعنی ریشه گرا باشیم ولی افراطی نیستیم نه امرسازی کار ما نیست اون برای که داره تحمیل میکنه اینم حرف آخر در یه دن بابشون توان انداز یه ما، حبته، چیل هم نبود خب، بیا حالا بهش یه میبه برم بیارم دست شما